بسم الله الرحمن الرحیم درس قواد فقه و سیاستم 11 آبان 1400 جلسه 9 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و <سلال> صلی الله علی سیدنا و نبینا اب القاسم <الخمان> محمد و علا اهل بیت تاهرین المعصومین سیم و بقیت الله فی الارزین روحی و عرواه العالمین اللح الفدا با ترکل خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت ادهار علیکم السلام اون رو آغاز میکنیم یکی از مواحث مهم در بحث قواعد این توجه بکنیم به سیر تدوین کتب قواعد این به عنوان یک تذکر مهم میتوانه مطرح باشه و ما طبیعتن بدون توجه به فضای کلی قاعد نویسی در فضای اسلامی نمیتوانیم چشمنداز خوبی رو برای خودمون در نظر بگیریم خب کتوب مختلفی در زمانهای بیشین توسط فقهای شیعه و سنی به نگارش درآمده. آمده اهل سنت در این کار یک تقدمی دارند لحاظ کسرت در جهان اسلام و اینکه فعالیت اونها وسیع تر است اما از جهت محتوایی لزوما نمیتوانیم ما این مقوله رو در مورد اونها نادیده بگیریم که ضعف های جدی مبنایی و روشی در کار اونها وجود داشته و در بحث قاعده سازی یا به تعبیر امروزین تقعید دوچار مشکلات اساسی هستند و این هم نباید ما رو دوچار خلاص قفلت بکنه و ما تصور کنیم که کسرت کار اونها تنوع کار اونها از منه گذشته و همینطور در فضاهای کنونی این اون اتقان و جامعیت و روشمندی و ظابطمندی نگاه شیعی و رویکرد شیعی رو خلاصه به هاشیه برسانیم خب طبیعتاً در فضای اهل سنت کتب مختلف و متنوعی رو ما می توانیم شاهد باشیم از گذشته به این بحث میپرداختند امروز هم در روزگار فعلی این تنبو پررنگتر شده اما باید بدانیم که این تنوع یه ظاهری داره و یک باطنی داره ظاهرش اینه که با شکگیری و رشد دانشها به ببینید در دوران معاصر که یک روشمندی از فضای دانش غربی هم بعضی از اهل سنت گرفتن و کارهای آکادمیکی به هر حال اینجا وجود داره قابل رسط هست اونها می توانه ما رو قافل کنه از اون بنمایه موجود در فضای خلاصه اساسی و محتویی که باید در نظر ما بگیریم خب طبیعتا قاعد سازی در فضای دینی رقم خورده چونکه قواعد به هر حال از دل نصوص شرعی و از دل محتوای نصوص دینی باید در بیام خب از فضا اگر ما مثلا در فضای شیعی داریم روایات شریفی مثل روایت هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام انما علینا ان النلقیا الایکم الاصول بر ماست که ما اصول رو به شما ارائه بدیم و علیکم انتو فرعو شما تفریع کنید اون قواعد اساسی این روایت رو مرحوم مجلسی در بهارالانوار جلد دوم صفحه چهلو حدیث پنج و دارند خب روایت مشابهی احمد ابن عبی نصر بزنتی از امام رزا علیه السلام فرمودن این روایت رو مکرر شنیدید الائنا القاء اصول الايكم و عليكم تفروا يا عليكم تفريب هم در همون کتاب در همون باب حدیث پنجاه جلد دو صفحه چهل پنج حدیث سه و پنجاه چار خب این نشان میده که منشأ قائد سازی قائد در محضر اهل بیت علیهم السلام شک گرفته و بلکه باید بگیم برمیگرده به عالم تشریع خب اهل بیت علیهم سلام تفریعاتی می‌فرمودند حکایتی خاطرم هست که یکی از بزرگان شیعی رفیق ابو حنیفه بود بعد ابو حنیفه خیلی تفریح کرد تفریحات عجیب و غریبی برخلاف روی کردی که در فضای اهل سنت در دوره خلیفه بود خلیفه دوم دائما ممانعت میکرد از مسئله سازی توسط افراد مسائلی که هنوز پیش نیامده بود او می میکرد اما ابو حنیفه در دوران خودش این مسئله سازی میکرد خب روایت هم در دست او کم بود او هم روایت منقول رو چندان قبول نداشت و به سمت قیاس میرفت. خب یک فرواتی می ساخت. یکی از اصحاب اعمه که با او رفت ارتباطی داشت، مسائلی رو برای او طرح کرد. او تعجب کرد و براش که این مسائل رو شما از کجا آوردی؟ این مسائل من درست کردم. خب ایشان گفتش که بله مثلا حضرات مصومین من ناموختم او برای سنگین بود این مقوله خب این نیازهای نو به نو طبیعتا اونها رو حل میداد به این سمت مسئله سازی و بعد یک مواردی هم قاعد سازی یا قاعد شناسی خب قاعد شناسی در کتب فقهی به تدریج گرفته از کتب خودم شروع کنیم از اونها اگر بخوایم یاد کنیم مثلا در المقنه مثلا مرحوم شیخ صدوق مواردی رو داره که به صورت جزئی به صورت استقرائی قواعدی رو استنتاج فرموده مثلا آمده در باب رجل يتوطأ و تهو بصيام و عليه شيء من شهر رمضان اعلم انه لا يجوز يتوطأ رجل و عليه شيء من الفرض كذلك وجد توفي كل الاحاديث خب اینطور موارد رو من این موارد رو در کتاب از کتاب مختصر شناسی قواعد فقهی که در نرم افزار هست در نرم افزار فکر جامع فقه هلوی نقل می‌کنم صفحه 17 18 همینطور شیخ مفید مثلا میام جلوتر به طرز تأسیس قاعده سازی به تأسیس قواعد می‌پردازند مثلا در جایی می‌فرمایند که الاهازل اصل الذی شرحناه یؤمل فی هاذ الباب در المقنعه صفحه 711 خب موارد اینطوری داریم و سیری رو داره اما از باب کتب و تدوین خب تو کتب و تدوین سیر آرامارا می داره یکی از اما با این تذکر که علما لزومن کتاب هایی که در مورد قواعد نوشتن لزومن قواعد فقهی صرف نبوده قواعد و فوائدی بوده که تنوعایی داشته یکی از اولین مواردی که در فضای شیعی می توانیم سراغ بگیریم کتاب مرحوم نجیب الدین یحیا ابن سعید الحزدی الحلیه متوفای 690 آخر قرن هفتم فوت میکنه مرحوم ابن سعید هلی که پسر محقق حلیه همینطور شاگردشه و از مشایخ علامه هلیه این کتاب شریفی رو که نوشته به عنوان نزحت و ناظر فل جمع بین الاشباه و نظائر این کتاب رو در هفته هفت فصل تنظیم فرموده حجم کمی داره ولی از تهارت تا دیاد آمده سعی کرده نکته هایی با این عنوان جمع بکنه البته این رو بدانیم که مفهوم اشباح و نزائر نزومن ممکن قواعد نباشه یعنی خیلی موارد ممکنه مشابهت هایی داشته باشن تو افغاب مقدنف ولی قاعده نباشن صرفا مشابهت هایی باشه حالا یه جای هم ممکن قواعدی هم باشه این یکی از کتبیه که اومدن سعی کرده خلاصه اینها رو جمع کنه و اگر برفض بگیم یه راه این بوده که موارد مشابه رو یاد جمع بکنن نوع وحدت از دل اونها در بیارن به قاعده برسن خب این مورد به مورد ما باید بررسی کنیم که آیا این صرفت شبیه شباحتی در بین اینها هست یا اینکه نه از دل اون میتوانیم برای قواعدی هم در بیاریم اما به هر حال به طور طبیع انتظار نمیره که در این زوابتی که در دنیای مؤاثر برای بحث قوائد ذکر شده در ادوار گذشته هم به همین صورت مد نظر بوده باشه میتوانه آم باشه پس از مرحوم ابن سعید حلی نجیب الدین یحیا ابن سعید الحرلی و هیدوچش الحلی متوفای 69 حت و ناور بگیم چشم روشنیه بیننده فلجمع بین الاشباه و نظائر موارد شبیه و موارد نظیر هم مطرفای 690 در 77 فصل بعدش علامه هلیب که عرض کردیم شاگرد مرحوم ابن سعید هلیه ایشان میاد کتاب کتابیب رو می نویسه به عنوان قواه دل احکام بعد مرحوم فخشان و 726 خب این فضا رو هم در نظر بگیرید ما ببینید یه تاریخی رو پررنگی برای شما ارزم کنم از سیاسی و از علمی مهمه در سال 656 سقوط بغداد توسط مغلها رخ میده یعنی ببینید از این به بعد یه مقدار فضای جهان اسلام هم متوفف تغییر پیدا کرده بعد علمای ما در شهرهایی مثل ببیشش در هله برجسته دارن میشن اینجا ببینید ابن سیده هلی مربوط به هله است شاگرد ایشان مربوط به هله است مرحوم علامه هلی خب این رو هم در نظر بگیرید خب اون نکته سلبی اون تاریخ اینه که جهان تسنن با مهوریت خلافت عباسی دچار دگرگونی مهم شده هرچند خلافت در این دو سده اخیرش خیلی تشریفاتی تر شده بود از ازمنه گذشته از زمان حارون رشید تضعیف شد زیر مجموعه سلاتینی شک گرفتن قبلا فقط خلافت بود و اون مال او از زمان دعوای امین و معمون به بعد زمینه برای شکگیری حکام محلی و استقلال اونها هرچند زیل عنوان خلافت شکر گرفت خلیفه ضعیف شد بعد گود یکونیم قرن آین شیعی حاکمیت محوریت حکومت در دستشون بود در خود بغداد خلافت تضعیف شده بود و آل بوی اونجا سلطنت میکردن و خلیفه کمی تشریفاتی شده بود اما با وجود که شیعه بودن خلیفه رو به زیر نکشیدن بعد خلافت فاطمیون در عرض این خلافت ایجاد میشه همینطور سلاجقه که حمله میکنن به بغداد خب اونها که سنی بودند تسلط و حاکمیت پررنگتری نسبت به خلفا داشتن شیعه هم وضعش بد شد مرحوم شیخ توسی در به در علمای شیعه خلاص در به در میشن و تضعیف میشن کتابخانه شون از بین میره سال 755 ایشان میرن خب دو قرن بعد تو این دو قرن خلافت خیلی تضعیف شده حتی بعضی سلاطین حمله میکنن به بغداد خلیفه اسیر میشه طبعاً فخ سیاسی خاصه خودش رو هم داره تاثیرات اینطوری ولی اون موقعی که خلافت هست خیلی ضعیفه اما با وجود این با حمله مغول فضا بسیار دیگه تغییر میکنه و ما دویست سال بحران خلافت داریم تا حالا خلفای عباسی نقل مکان می‌کنن به صورت خیلی ضعیف به مصر اونجا پسرمون حاکم بود یه مقداری تغییره میخوان حفظ سکان خودشون رو بعد خلافت عباسی رو نقم میگیره بود 250 سال بعد وقتی به فضای صفویه میرسیم خب اینجا دیگه کاملا فضا تغییر میکنم ارزمینه که شکگیری و تدوین کتب فقهی کلامی فلسفی اعتقادی همه اینها رو در اون بازه زمانی ببینید که وضعیت سیاسی اجتماعی چگونه است و فقها ها چگونه دارن به این می میپردازن طبیعتا در محتوی هم می توانید شما رسد کنید خب 690 مرحوم ابن سعید هلی 726 طرفای علامه هلی که قواعد و لحکام مینیسه فرزندش فخر المحققین که به شرح قوائد میپردازه ایشان میگه که من از پدرم درخواست کردم که کتابی در فقه بنویسه که قوائد رو داشته باشه بعد مسائلش مبتنی بر دو علم اصول و علم برهان خلاصه شکل میگیره و هر قاعدهی هم یه لوازم حکمی داره میرسیم بعد از اون علامه به شهید اول متوفای 786 علامه 726 شهست سال اضافه بفرمایید شهید اول شهست سال بعد فوت میکنند تولدش هشت سال بعد از علامه هلی 734 توفای شهست سال بعد 786 کتاب القواعد و فواعد رو می نویسند که جامعتره، به یک منو علمیتر مثلا ممکنه بگیم هست. اما این هم بدانیم مرحوم شهید اول علامه این بزرگان ناظر به اهل سنت هستند. مبادسه اونها رو هم می دانن یک جاهای مشابهت های پررنگی در مبادسه شون پیدا میشه. از جمله در شامات یکی از علما رو داریم از علمای سنی که مشهوره کتابش هم الانم الان هم خیلی محل ارجاعه سه قواعد کبرا داره مثل الامام الازددین ابن عبدالسلام خب اشان کتابش خیلی مهمه این آقاین مقاصدی به این کتاب و بعضی کتب دیگر این قواعد کبرا داره قواعد سقرا داره و چند کتاب دیگه خیلی گراشوی مقاصدی رو پررنگ کرده و بحث‌های تزاهم و اهم و مهم هم لابلای موادسش خیلی پررنگه مرحوم شاید اول هم بعضی جاها بهشان نظر داره برای جایگاه مهمی نسبت این کتب. و این نگارش های شیعی رو باعث خیلی دنبال کرد که ناظر به کدام یکی از علما به تأمل پرداختند، پاسخ دادند، تایید کردند، ارتقا دادند. خب نکته مهمی که هست این که اینجا این کتاب در حال فوائد یه قدم یقدم رو و دید رو میبره جلوتر و اینجا ما ببینیم که قواعد برای یه مقداری تر میشه و ارتباط با اهل سنت هم اینجا بسیار پررنگه که حالا در همین متن محقص شنسی مقدمه رو من بعضی نکاتی که اینجا آمده شار میکنم بعضی نکات رو هم خودم دارم پررنگ میکنم خب اینجا شما ببینید که قواعد یه اهمیت تاریخی پیدا میکنه اون اهمیت تاریخی از این جهته که سالها این کتاب کتاب درسی میشه و سبکی پیدا کرده که محل ترجه قرار گرفته می آیم جیلوتر شاگرد ایشان مرحوم فاضل مقداد میاه این کتاب رو یه جوری تنقیه میکنه تحریر میکنه موارد تکرارش رو حذف میکنه و کتابی می به عنوان نزدالقوائد خب این کتاب پس اهمیت کتاب القوائد و الفوائد که فراتر از بحث‌های قوائد فقی هم هست این کتاب پررنگه و در نزدالقوائد هم شما می بینید که آمده اگر اجازه فرماید من متن رو یه چارچوب کتاب القواعد و الفوائد رو خدمت شما ارز کنم و همینطور دو جزء که در نرم داریم جلد اول با این عنوان شروع مشه قواعدم فی الاحکام شرعیه این شماره داره که حدود خدمت شما عرض کنم صد و هفت قاعده اوورده قواعد مربوط به چی شد قواعدون فی الاحکام شرعیه مثلا گفته الفقه لغه و قتل فهم قواعد الحكم شرعی انقسم ال الاخ... الخمسۃ المشهوره قاعده سوم العبادات تن تنقسم اه... ما عدل مباح قاعده 4 لماسه علم الكلام ان افعال الله تعالی معلله بالاقراض ببینید پس فراتر از قواعد فقیه بعدی کل حکمی، کل حکم شریعی یا کون القازل اهم من هول آخره، امّا لجلب نفع فیها، اول داف از دارفیا یوسام و ایبادتان. به این لسان با قوایدشون لجلب نفع فیها، اول داف از این درف به اهل سنت به وفور یاد میشه ببین اون قواد کبرا و ابن عبدالسلام و خیلی کس این تعبیر رایجه اونها ذکر میشه قاعده ششم کمک به این میگه معاملات معامله چیه میگه همون که قرض اهمش دنیاست چه برای جلب نفع باشه چه برای دفع ضرر قاعده هفتم الوسائل و خمسون اینجا دیگه اون بحثای شبیه بحثای فقه مقاصدی هست که مقاصد رو تقسیم این اسباب مقاصد رو تقسیم میکنه وسایل رو تقسیم میکنه قاعده هشتم الخ... حکم و خطاب و شرع المطلق به افعال المکللین به الاختضای و تخیر. این تعریف مشهور مربوط به حکم رو میاره پس ببینه الان خیلی بحثان لزومن مربوط به قواعد قواعد نیست یه قواعد یه عامیه. یه جای اصولیه یه جای فقهیه خیلی تنوع داره بعد بعدشون عنوان عامشون از صفحه 313 هاهونا قواعد فل اشتواحات و, و توابع هی جلد یک چند تا قاعده داره قاعده 8 اذا لم يستدل على وجه مرجح له عهد المحتمل تفييه صبرون همینجور میره جلم آخرین مورد چی قاعده 114 خیلی مهمه اینو در نظر داشته باشید الفرق و بین الفتوه والحکم من در این کتاب چار جدی مبادی و اصول فقه و حکومتی احتمالا جلد چهار باشه با استقراع فراموانی در فرماشات بزرگان فرق فتفا حکم رو از منظر علما در کتب فقه حکومتی وردم بردم دسته بنده کردم مثلا اینشان اینجای رو میاره خب این قواعدهم فل اشتهاد و هي هفش مورد دسته سوم اون فل احکام الشرعيه از مثلا میگه مم یستثنم من الامور الکلیه من الفروع الجزئيه لضروره ال... او لمس الحاجه صحت الصلاه المستحابه یه موارد ریزی همینطور میره جلو تنوع داره اه تنوع تشغيلی داره در موضوعات مختلف که به بواس مختلف فقهی میخوره دسته بعدی و حاضری قواهی تون تتعلق و بلغذا از 147 شروع میشه به بعد این اولی موردش برای بحث فقه و سیاسه مهمه قایده 140 فی زبط ما یهداج الالحاکم کل و قضیه یه و اون نظافی ها اینو میگه آقا چه مواردی جای مراجعه فقیه هست بعد زیلش مثلا فائدتون یجوز و ازدل الحاکم فی موازه یا قاعده سب چلش یجوز و للآهاد مد از تولیت و آهاد تصور حکمی علل اصح ببینید اگر حاکم نباشه مردم دیگه میتوانن قاعده سوم میره تحقیق مدعی و منکر پس این مثلا این دوتای اول جنبه حاکمیتیش رنگ. خب بباعث بعدیش میره تو ریز مقصد قضا. این جلد یکی بود پس ببینید قواعد فقه سیست همیشه لا به نا پیدا کرد و چارچوبه این قواعده سازی رو دیدید جلد دوم میگه قواعد اون فل احکام شریع اون تیتر قبلی هم ما قبل قواعد قضاید همین بود مواد مختلفه مثلا از اون قاعده 159 قاعده فرق بین مای مطلق و, ما و مطلق ما بلیم همینطور هج ازن عام حجر خیلی مواد مختلف دسته بعدی قواعد حاضری. قواعد اون فلعبادات مثلا قاعده 224 به بعد دسته بعدی قواعد متعلق به عرص برشی اقود دسته بعد قواعد متعلق به ارث دسته به قواه دنفل احکام شرعی هم مثلا صحیح هم من الابادات و الابود. یه تیترای کلی اینجوری یه آخرش هم استدراکاتی داره خب مجموعه پسیدید یک تنوعی داره که این آقاین شما رو گذاری کردند کردن خب نزدل قواه دم اومده به هر حال کار رو خواسته کمی سامان بهتری بده که نزد القواه دل فقی علامه از حبل امامی چارچوب شو خدمش رو ارز میکنم مقدمه تعریف فقه و مایه تعلق و بزالک قطب اول فلقواه دل آم متردت به علم مقدمات سابقه قطب ثانی و فیه مقاصد عبادات معاملات تنکو اقوبات احکام اینا به عنوان مقاصده پنج مقصد زیل قطب ثانی خب خب الان پس الان اینجا دستبندی سعی کرده بکنم مثلا مقصد آخرش که احکامه اونجا اومده گفته اشت... الفصل الاول فصل اجتهاد فصل دوم فلقضای و متعلقات پس تنوع خاصی است مقصد چهارم که قبل از این عقوبات بود حدود و جنایات داره مقصد فصل قبلش هم که عرض کردم بفرماشد مقصد ثالثم هم و اینا بود مقصد دومم معاملات خب پس یه دستبندیام متفاوت شده خب اگر بخوایم در واقع ما سیر این کتاب‌ها رو در نظر بگیریم خیلی نکات زیبایی ما می توانیم به دست بیاریم در واقع در این تاریخچه خیلی نکات کلیدی پس پیدا میشه پس در مجموع میبینیم آرام آرام داره رشد پیدا میکنه از مرحوم ابن سعید هلی قرنگ میشه شاگردشون علامه بعد میام شهید اول خب میام همینطور جلو این کتاب پس به عنوان یک کتاب درسی اینجا برجسته میشه شهید ثانی هم میان چیکار میکنن متولده 911 تا 966 هستند شهید اول 786 شهید دوم 966 چقدر فاصله داره از 980 786 تا 966 180 سال بعد شهید هستند کتاب تمهید القواعد دارند خب 100 قاعده ادبی 100 قاعده اصولی با فروه فقهی رو جمع فرودند بعد میرسیم مرحله اخباریون اینجا هم به می بینیم محدث بحرانی متوفی است. 1186 مرحوم شهید 966 فوت کردن ایشان 1186 120 سال بعد آمده کتاب حدایق و ناظران رو نوشته قوائدی رو سعی کرده خلاصه در بیاره بعد متایی مقدار نقد و اینا هم دارن که میگن آقای یه سری قواید اصلا ریشه دینی نداره و لاکن نهم رزبانون لا علاهم الغوها زیل قواید الوار در انعیمت و تخصیل قواید لا اصلالهاف شریع خورد نگاه می خورده میگیره احلا مرحوم صاحب حداق اق یه اخباری معتدله خورده میگیره بر علمای اصولی که آقای اینا یه سازی کردن که خلاصه مشکل داره بعد ما اگر این بخوایم نگاه کنیم باید چه کار کنیم بس اینجا فرض بگیریم حرف اخباریون درست باشه باید یک رویکرد انتقادی روی کرد بررسی داشته باشیم این رو ما باید به کجا برگردانیم اگر بخوایم فرض کنیم بین اخباریون و اصولیون به این نقار رو بخوایم برداریم حالا صاحب هدائق یه مقداری معتدل از دیگر اخباریون اگر بخوایم ببینیم حرف کدام درسته ما باید یه درست کنیم به نظر من میرسه که اون قسمت اصلی به روش ناسی استنبات برمیگرده وقتی که یه قاعده روشان قبول نمیکنه، طبیعتاً یا باید مثلا سندیت اون روایات رو قبول نداشته باشه خب اخباریان یه مقداری اقبال به روایت مشهور دارن که مربوط به کتبه و منابع مشهوره یا باید دلالت رو قبول نکنه استزهار رو قبول نکنه یا باید و بگه این استظهار ها زنیه اجمالا یه تعبیری من برای اخباریون به کار میبرم فهم ما از اخباریون رو شفافتر میکنه اون چیه بحث قط گرایی در, در نزد اونها وقتی که ما میگیم اخباریون بعد تعبیر دیگه هم بگیم آقا اینا ظاهرگراه هن بله در فضای اهل سنت ما یه ای داریم به اسم گروهی داریم به اسم ظاهری ها ظاهری ها چه را بهشون میگیم ظاهری چون که فقط به تعبیر دیگه منطوق بسندند ظاهر بسندند مفاهیم رو قبول ندارند تمسک های فراتن از ظاهر اون ملازماتی که ما ها ممکنه عرفی هستند اونها میگن نه اینا خارج از ظاهر ظهور در اینها نیست منطوق نیست مفاهمه اونها منطوق بسندند ظاهر بسندند ظاهری ها اینطور وقتی که به اخباریون میگیم اخباری خوب نمیفهمیم میگیم ما اون قبول قبولن خب ما هم قبول داریم خب حالا تفاوت ریز داره ولی این تف مفهومم می توانه کمک بکنه. و در نوع تمسکات و ردها و پذیرشها فهم بهتری پیدا کنم اینها یه مقدار گرایش به این دارن که موارد قطعی رو قبول کنن موارد زن... زنی رو قبول نکنن دایره زنون مبتبر نزد اونها کمه همونطور که نزد ظاهریه اهل سنت هم کمه البته هنابله هم یه مقداری ممکنه در این جرگه قرار بگنم ولی ظاهریه خیلی بیشتر اونها البته قیاس و اجماعینا هم قبول ندارن ولی در مفاهیم خب مفاهیم رو کلا میذارن کنار یه جور ظاهر بسندن اخباریون هم یه جایی به این ممکن برگردن ولی باید ریشه رو به این برگردانیم که اونها قط بسندن قط گردن قط محورن یا زنون رو قبول ندارن یا خیلی محدود خب این باعث میشه که خیلی جاها حرفهای اصولیون رو رمی بکنن و نپذیرن و بگن شما سنی زده شدید از منظر اخباریون علمای اصولی سنی زدند چرا؟ چون که اونها در دانش اصول میان زنوری رو قبول میکنن علمای اصولی ما هم از منظر اینها افتادن در دام اونها هر چند زنون معتبر نزده اصولیون ما محدودتر از زنون معتبر اهل سنته اما از منظر اخباریون ها چون که مبناشون قط بسندگی و یا رتبه بندی میکنم افرادش رو بگیم قط بسند یعنی زن رو هیچ جا قبول نمیکنند یک کمی معتدلترش رو ممکنه بگیم قط گیرا قط گیرا باشن یه جاهای محدودی زنون رو قبول بکنن اگر بگیم پس قط ایراد دایره زنون محدود میشه ولی قطع بسنده بگیم بی هیچ ذنی رو نه بعد بپذیرن خب یه مقدار غیر اوغلهای غیر عرفی میشه خب همینطور میشه سطبندی بکنیم در بحث دیگه معنی سطبندی‌ها رو دارم در بحث تاریخ علم و اصول هم عرض می‌کنم خب برگردیم اینجا الان این قواعد میایم اینجا پس مورد نقد مرحوم صاحب قرار میگیره یه کتاب دیگه میان جلوتر خب کتاب زیادی نوشته شده اینا هم در یه دوره‌های برجسته شدن ولی به عنوان کتاب آموزشی این کتاب قواید فواید و شا... چه بسید قواعد و اینها مطره میرسیم دوره متأخرتر، تر در این دوره معاصر بس کتاب الاناوین هم آمده دستبندی کرده یه مقدار شبیه خلاصه این کتاب قبلی آمده من چارچوب الاناوین رو بخونم خدمت شما از یه جهاتم الاناوین کتاب خیلی زیبایی در دو جز مرحوم میر عبدالفتای حسینی مراقی متوفی 1250 که چاپ جامدرسین مرحوم سیدمیر عبدالفتای حسینی مراقی الاناوین الفقیه بعد از مقدم در جلد اول عنوانی دارن اناوین المشترکات فی ابواب الفقیه من الان بخوام خودم دسته بندی بکنم ان قواعد رو میپسندم پیشنهاد میکنم اول قواعد عام و مشترک و شامل به تعبیر جناب استاد رشاد قواعد شامله این قواعد شامله تدریس بشه در اول دانش هم اتوان بعد این قوائد آم بیا چرا؟ چون که شما در زیل دروس مباحث فقی مسئله مسئله میخواید بحث بکنید قوان اده همه جا باید تطبیق بشه به اون تمسک بشه پس اول اینا رو باید بحث کرد به درد کل فقه هم میخوره پس اول کار بعد قوائد اختصاصی هر باب رو اول اون باب بیاریم چرا؟ چون که قرار در مسائل فرعی هم به اون تمسک بشه چونان که مثلا ناین نرا... نا ببخشید مرحوم نراغی دو قواعده برای بحث ولایت فقی اثبات میکنه بعد میه که آقا این قدرت قواعده در نظر داشته باش ما همه جا در فروات و ذکر موارد ولایت اول بینات هم سکت میکنیم بعد عدلی خواست هم میاریم همین کار میکنم پس شعن قواعده عام و مشترک و فراگیر رو شامل این که اول فرق بحث بشه هم این رو میارن که چند مورد شما رو گذاری میکنن مثلا الانوان الاول فی اشتراک تکلیف دوم الانوان سانه فی حکم المکلف الخارج عنال آدم همینطور میره قایده اصر و حرج میشه قایده نهمش، مثلا تبعیت احکام لل اسما بلشاره میشه قایده ششوم شک بلدالفرا قایده پنجم قایده نفی زرار و زرار دهم دهوم همینطوره نمونه بعضی موارد رو عرض کردم 11 قاعده قاعده یازدهم میشه قرعه دسته بعد میشه قاعده قواعد متعلق بالعبادات از قاعده اشر شروع میشه از سالت و تعبدی فی المأمور به همینطور میره جلو نیت و سایر موارد عبادات دیگه خدمش رو ارز کنیم تا قاعده از و اشرون که فلعیان علا تاعتون ولعیان علا اسم اسمون قبلش هم حرمت اعانت به شاعر قاعده 25 خب و سایر موارد جزء دوم از اناوین کلیش چند عنوان کلی بیش داره اناوین فل معاملات برمیگردم. ااوین و فی قدن او ایقا نه پس عنوان چارچوب میزند. بعدی عناین مبتلات للعقود ابتدان و استدامتا عاوین و زمان و اسباب ای و مسقطاتی و احکام الله قله، دور مسقطات و زمان پس اجمالاً تا صفحه، 555 در جلد دوم مباحث مربوط به معاملات و ملحقات که معاملات و عقد و ایقا و زمان و مسقطات زمان و اینها خب پس این اگه بخوایم ملحقات رو یه دسته حساب کنیم همچنان در تیت هم در عرض تا اینا قرار, اینا قرار گرفتن عنوان دستی چهارم حالا با شما را شبنده این خیلی مهمه اناوین و سیاست و سیاسات و مایالحقها منبعز المباحث آخر اونبانم اناوین و شرایط الامل المباشرین فی عبادت ناو عقد ناو ایقا خب حال بریم سراغ این اناوین و سیاست و سیاسات و ها صفحه 555 تا 659 حدود 104 صفحه خب شماره چند شروع میشه اینجا عنوان و سالس و سبعون هفتاد و سومین عنوان شروع بحث اناوین ولایات و, و سیاست خب این ای یکی که فی ذکر الاولیه و المولا علیه عنوان هفتاد و ولایت الحاکم شرعی عنوان هفتاد پنج ولایت عدول مؤمنین عنوان هفتاد و شش به بعد دیگه میره سراخ بحثای چی؟ قضایی مدعی و و مختزل قاعده انده اشتباه المدعی و همیتون میره جلو پس الان در این دستبندی خیلی جالبه و تیدر گذاریش دست رو میبره سراغ این معقوله اگر یه دو سه دقیقه استرهاد بفرمایید بعد من در خدمه سم <تصفيق> <تصفيق> الحمدالله رب الانمین